روز سی دسامبر 2014 در قلب سان فرانسیسکو، یک تاکسی مسیری رو از محله چینی ها تا مارین تیچرد تنها یک مسافر داشت زنی که نام واقعیش ادلاین بومن بود اما از نام مستعار جنیفر لارسون استفاده می کرد. این اولین و آخرین فصل از داستان زندگی اوست زندگی ادلاین ببخشید بعد آروم حرف بزنیم پدرم شبکاره و الان خوابه تو دیشب کار اصلای رنگ و چاپ دیجیتالیشو رو تموم کردم جوری روش کار کردم که خیلی تمیز و نو به نظر نرسه رمز کارم هم همینه می‌بینی که روش چند تا لکه و تغییر رنگ دار بردم با این جزیات امکان نداره که کسی به اصل بودنش بتونه شک کنه حالا چرا 29 سال من اگه جای شما بودم چند سال از سنم کم می‌کردم. بهتون میخوری که جوانتر از 29 سال باشین نظر لط بتتون کارت عالیه اگه از آشناتون کسی مدرا که جلی لازم داشتی این چرا که... این کارو میکنی؟ منظورتون چیه؟ تو پسر باهوشی هستی جل اسنا جرم دو۵ هزار دلار شش سالم زندان داره وای تو پلیسی؟ <تصفح> <تصفح> نه من هیچ ارتباط با نیروهای پلیس ندارم فقط هدا رفتن استعداد آزارم میده جف تو تونی اسمم رو تو پای بهیسپال امضا شده ای که تو اتاقت بود نوشته بود جف. همین جزئیات دادم الله میده. کتابخانه <تصفيق> ملی <تصفيق> لطفاً. ممکنه تور بکشه ترافیشه. خب از مسیر کالیفرنیا به هایت بریم. هایت در دست تعمیره. خب از همین مسیر بریم خیابون گالف بعد خیابون پالک بعدش خیابان خیابون گرو من نرسیده به بازار پیاده میشم <تصفيق> شغلمون رو عوض کنیم بد فکری نیست. جینی صبح خیلی صبح خیر. سلام فکر کردیم چون امشب شب سال نایه نمیای سر کار آم روز کاره تازه جشتم که دیر وقت میشه خب یه کار خیلی جالب برات دارم چه کاری؟ کار مرد علاقه آرشیو ویدوهای خبری بالاخره قراره به صورت دیجیتال در بیاد باید برای ارسال آمادش کنیم دوستش دارم آدلاین میری بومن ساعت دوازده و یک دقیقه نیمه شب اول جامعیه سال 1908 در بیمارستان کودکان سان فرانسیسکو به دنیا آمد او تنها فرزند فی و میلتون بومن بود شانزده همه و 1929 هنگامی که ادلاین بومن و مادرش مشغول تماشای اجرای پروژه پل گیت بودند که سه سال بعد به اتمام می رسید با مهندس جوانی آشنا شدند که رفتار بسیار پسندیده ای داشت شاید 7 روز بعد ادلاین با مهندس کلارنس جیمز پرسکات در کلیسای مریم مقدس سان فرانسیسکو ازدواج کرد. سه سال بعد ادلاین دختری به دنیا آورد. نام او را به یاد مادربزرگ پدری ادلاین، فلمینگ گذاشتند. در هفدهم فوریه سال 1937 هنگامی که بخشی از داربست پل گلدنگیت فرو ریخت هشت کارگر و دو مهندس جانشان را از دست دادند همسر ادلاین هم در میان جان باختگان بود ده ماه بعد از مرگ همسرش او در حال رانندگی به سمت کلبه ساحلی خانوادگیشان در شمال شهر بود جایی که فلمینگ 5 ساله انتظارش را میکشید ناگهان اتفاق غیرمعمولی رخ داد اتفاقی شگفت‌انگیز و باورنکردنی در شهر سنوای ایالت کالیفرنیا برف شروع به باریدن کرد شُدَن در آب بسیار سرد باعث شد بدن ادلاین دچار واکنش آنوکسیک یا افت اکسیژن خون بشود. تنفس او بلافاصله متوقف شد و ضربان قلبش پایین آمد. در عرض دو دقیقه دمای داخلی بدن ادلاین به شدت کاهش پیدا کرد. قلب او از تپش ایستاد. در ساعت هشت و پنجا پنج دقیقه سائقهای به ماشین واژهون شده اثابت کرد که باعث آزاد شدن نیم میلیارد ولت برق و ایجاد جریانی به قدرت شست هزار آمپر شد این اتفاق سه تأثیر بر جای گذاشت اول نیروی برق مانند دستگاه الکتروشوک قلب ادلاین را دوباره به کار انداخت دوم بدن او از حالت آنوکسیک خارج شد و پس از وقفی دو دقیقه‌ای نفس کشیدن را دوباره آغاز کرد سپس بر اساس اصل ونلمان یعنی فشردگی الکترون در رشته های که در سال 2035 کش خواهد شد بدن ادلاین بومن از آن پس نسبت به آسیب‌های ناشی از گذر زمان مسون گشت یعنی او هرگز پیر نخواهد شد با گذر سالها ادلاین عدم تغییر چهره و فیزیکش را به دلایلی چون رژیم غذایی سالم ورزش ژنتیک و خوششانسی مربوط می دانست. آره؟ ادلاین. <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> میریم سلام. خود که مان تو اصلا عوض نشدی. ممنونم. البته نظر لطفت. نه تو چقدر بزرگ شدی. منم همش همین به منم میگن ولی باور نمیزیدم. ببخشید ما دیگه باید بریم. ولی انگار شما خواهرین. این همه تعریفو ندارم. آخه چطور ممکنه ندونی؟ آ یه زدی چورو که جدیده. از ملکه زنبورا تولید میشه. بس عزیزم از خوشحال شدم میریم. چند هفته بعد پلیس ادلاین را که در محلهی خلوت در حومه شهر زندگی میکرد به یک تخلف جزئی در رانندگی متوقف کرد اینجا نوشته شما اول ژانویه 1908 به دنیا آمدیم درسته یعنی شما الان چل پنگ سالتونه؟ ب... بله من این نگه میدارم خانم فردا بیایی نداره پلیس تحویل بگیرین لطفا گواهی تولدتونم بیاریم حتما این کارو می‌کنم جناب سروان فردا صبح خوبه؟ بله کمی بعد از این اتفاق ادلاین به سانفرانسیسکو بازگشت و به کار دفتری در یک دانشکده پزشکی مشغول شد. در آنجا او از هر فرصتی برای مطالعه درباره وضعیت غیر طبیعیش استفاده کرد. بعد از یک سال مطالعه ادلاین با من به ناچار این واقعیت را پذیرفت که هیچ توضیح علمی برای شرایط او وجود ندارد. آیا شما عضو حزب کمونیست هستید؟ یا هرگز عضو حزب کمونیست بودید؟ آجلاین؟ آب ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتید. ما مامورای پلیس فدرال هستیم خانم بومن. چند تا سوال ازتون داریم، باید پاسخگو باشید. برای چی؟ من کار خلافی نکردم. یه شهروند قانون مندم چطور جرعت میکنین تو محیط کارم مزاهمم بشه؟ راه دیگه این نبود خانم از محل سکونتتون اتصلا نداشم لطفاً بفرمایید. دلیلی برای نگرانی وجود نداره خانم با من فقط میخوایم چند تا آزمایش رو انجام بدیم سمعت سراغت بگو من برای تعطیلات رفتم اروپا و دیگه هرگز برنگشتم دفعه بعد که همدیگه رو می من یه هویت جدید دارم همیشه مادرت خواهم بود ولی باید منو به عنوان دوست به بقیه معرفی کنی ماما نه این تنها راه عزیزم برای تضمین آزادی و امنیت خود و دخترش با خودش عهد کرد از آنجا فرار کند و هر ده سال یک بار نام، نشانی و ظاهرش را تغییر دهد و هرگز چیزی از ماجرای زندگیش را برای هیچ کس بازگو نکند هفت هفته بعد هنگامی که جنیفل لارسون برای همیشه ناپدید شود و سوزن فلایشر در یک مزرعه افتاده در شهر اشتون ایالت آرگون ساکن گردد ادلائن بومن برای لحظه نسبت به عهدی که شست سال تمام حفظ کرده بود دچار سستی شد سلام ریچن آماندا برارمونی که فرامش نکرد باورم نمیشه به حرفم گوش کنی پرشه به ازدواج فکر میکنم راستش برای این بهت از... زنگ نزدم هتل ماشین برام میفرسته لازم نیست بیای دومباله چما کلاس؟ قبلا تو مراسمشون بودی؟ بقید یه بار خیلی سال پیش شنیدم خیلی مجلله من باید حاضرشم مراقب خودت باش خداحافظ ریچن جاي قرار فردامون سر جشه عالیه خيل خوب برو بخواب تو سن دارم شب بخیر منتظره کی هستی شنیدی که میگن اگه تو مراسم سال نو تنها بودیم اون وقت آخر سال تنها درست. درسته بیمزه بود یه بار از یه نفر که امسن پدر بزرگم بود شنیدم سال نو اوه. تام هم باشم دیگه به موقع خودم را برسنم به آسانسور خیلی بایدی یادتون بمونه میدونی کارت خیلی عجیب بود چه کاری؟ این که مراسم سالن رو رها کنی بری خونه من آدم عجیبی هستم منم ایلیس هم خیلی هم خوشناختم. مثل جزیره ایلیس؟ نه مثل آقای ایلیس من جنی هم. مثل شعر جنی؟ نشنیدی؟ اگر چه خسته و گینم ثروت و سلامت از من گریزانند هر روز پیرتر میشوم ولی جنی را دیدم شعره کیه؟ احتمالاً یه شاعر رومانتیک پس مطمئن نیستی راستش مطمئن نه همولیهی نمیخواه بگم خیلی دانا هستم حیف شد آدمای دانا برام عزیز آه. آه. آه. خب آه. شما کجا تشریف میاری؟ یه جایی که قضاهاش خوشمزه تره خونه خودم آه میخواستم شما رو به خانواده معرفی کنم آه یعنی قبول کنم شما به خانوادتون اومدیم نهمونی احیانا نامزد یا دختر خانومی <تصفح> نه من نامزد ندارم خانم. اما آشپز مراسمه من فقط به دعوت ایشون اومدم اینجا هنوزا میخوای بری؟ تاکسی خانوم؟ بله لطفاً ممنونم شب فکر؟ آه بدرقت میکنم میخوایی بگی خیلی مؤدبی. باور دارم که ادب آداب دارد آه باشه ممنونم منم باور دارم خداحافظ از دیدنت خوشحال شدم ممنونم سکا <تصفيق> آه تاکسی رو با آسانسور اشتباه گرفتی گفتم یادت نمیمونه. <تصفيق> باید خانم و دمون ببینیم سلن و لطفاً حرکت کن. حدیر کردم نه به موقع اومدی تولدت مبارک مامان. ممنونم عزیزم از دیدنت خیلی خوشحالم عزیزم لازم نیست هنوز به هم کارت تبریک بدی دوست دارم منم دوست دارم خب که اصباب کشی میکنیم هفته سبومه فوریه. مثل همیشه دقیقا فکر کنم یادت رفته درباره نمک چه صحبتی کردیم یادمه ولی تصمیم گرفتم گوش ندم راستی منم داشتم به اصباب کشی فکر میکردم ولی تو که عاشق خونت بودی هنوزم هستم ولی اونجا خیلی پله داره مامان هفته پیش که آلفونسو از پله ها افتاد لگنه شکست دکترش گفته شاید هیچوقت از بیمارستان مرخص نشه دقیقا روز بعدشم مالیاندروز به زنگ زد و در مورد یه خانه سالمندان خیلی خوب تو آریزونا حرف زد خودش پارستاد رفته اونجا میگفت هیچوقت تو زندگیش اینقدر خوشحال نبوده چی شده من دارم میام اورگون که نزدیک تو باشم عزیزم که بتونی بهم سر بزنی یا اصلا بیای پیش هم زندگی کنی <تصفيق> از موقع دبیرستانم با هم زندگی نکردی آخه تو دیگه داری پیر میشی اگه بری آریزونو با اتفاق برات بیفته چی؟ اگه مریض بشی؟ خب اون موقع میای پیش هم از اما را میکنی دیر برسم چی؟ نه؟ نه از این حرفان هستم. امروز روز تولدته که باید خوشحال باشی <سؤال> اصلا <سؤال> بابرم شد داری از چی حرف می‌زنید کارا؟ نشدید؟ آقای جونز داره تا اول کتابای کلاسیکو که هزار دلار ارزش داره به کتاب خونه اهدا میکنه نمیدونه چه کتابایی؟ نه برای خیلی سود میفهمیم چون از هفته‌اش تماس گرفتن و گفتن خودش داره کتابا رو میاره برامون. وای سلام. خوش سلام. سلام. اومدین. آقای جونز من از طرف انجمن میراث فرهنگی بابت هدیه سخاوتمندانه تون صمیمانه ازتون تشکر می‌کنم. الان تو راهه بزودی میرسه. اشکال نداره موقع احتای کتاب ازتون از اتون عکس بگیریم نه نه اشکال نداره حتما فقط حتما یه لسه سپنیم سلام منم دانای کل اینجا چی کار میکنی؟ یه چیزی برای تو ورده چند تا گل چقدر جالبه از کجا فهمیدی اینجا کار میکنم تا زود از هیات مدیره شدم بعد از جلسه دیدمت دیگه آ پس چرا تو آسانسور بهم به نگفتی اگه مهمونی چند طبقه بالا بود شاید وقت می‌کردم بهت بگم ام الان وقت داری میخوام کتابا رو احتاج کنم مشکلی نیست خب احتاج کن ماظوم اینه که میخوام تو رو از من تحویل بگیری. نه، متاسفم نمیتونم. البته که میتونی. راستش نمیخوام ازم عکس بگیرن. واکنمی ترسی بد بیفته. مسئله این چیزا نیست، کلا خوشم نمیاد ازم عکس بگیرن. حزمو اگه تو تحویل نگیری، من احتیاشو نمیکنم. داری الکی میگی. چته میگم؟ اصلا همهشون رو آتیش میزنن. آخه من خوشم نمیاد ازم عکس بگیرن، الیس. باشه قبولم یه پیشنهاد دیگه میخوام به صحبت کنم صحبت؟ نه امکان نداره آه. باشه پس من که تابه میبرم رو میبنم اشکالی نداره اه، اه، کجا؟ جنگه تا حالا نرفتی؟ بایده تو این شهر جایی باشه که ندیده باشم خواهیدید کارتون <تصفيق> که تمام شد چگما رو بذارین جلوی در بیرون منتظرم باشه ممنونم تا خواهش مکنم خیلی خوب تو بردی در اولین سال طب حدود شست هزار نفر با کشتی به سان فرانسیسکو آمدن خیلی از اون آدم یه راست رفتن سمت کوها و کشتی همون همونطوری رها کردن برابر این ست کشتی و قایق توی ساحل موند جنوب شهر سان فرانسیسکو درست روی اونا بنا شده جالبه نمی دونستم وقتی اداره خدمات شهری داشت برای نصب خطوط تلفن حفاری می کرد اینو پیدا کرد خدای بزرگ ج آه این واقعا؟ آره ای کشتیه آه وای هیرا ما بله فاصله دست رو دادیم حفاری رو متوقف کنند چون میخواییم اینجا رو به روی عموم باز کنیم ما؟ یعنی همه من انجامن حفاظت از آثار تاریخی شهر دیگه حتما از ویعت مدیری انجام هستی آره این روزه هر کسی تو توی هیعت مدیر راه میدن <تصفح> ثروتت <تصفح> تو از کجا به دست آوردی؟ بهت ارث رسیده؟ ها شانسی، تو دانشگاه رشته ریاضی خوندم. زملا تو اوقات فراغتم یه الگوریتم برای تحلیل داده‌های هواشناسی ابدا کردم. هم اتاقیم کش کرد که میش ازش برای پیش های اقتصادی استفاده کرد. واسه همین توی خوابگاهمون یه شرکت تأسیس کردیم. سه سال بعد فروختیمش اونم با سهم خودش. تو فیجی یه خونه خرید خب منم با سهم خودم این کارا رو می‌کنم. بس الان شغلت اهدای پوله؟ آره درسته ولی ایجاد تغییر مثبت تو آدم از چیزی که به نظر میاد خیلی سختره حالا تو بگو از خودت خب منم زندگی خودمو دارم خب من دیگه باید برم قرار نهار داشتید؟ ام خیلی دیر شده الیس مرخصیم فقط یه ساعته آه باشه پس بذار تا اونجا باید بیم با همه چی ازت ممنونم من دارم از اینجا میرم ها. باشه یه فکری دارم یه چیزی میگم اگه خندیدی؟ باید قبل از این که از این شهر بری به حرفام گوش بدی و اگه نخندیدی میفهمم به درد هم نمیخوری و همه چی تمومه پس بیاد خیلی بامزه باشه خنده داتر این جو که جهانه ولی خیلی ظریف و پیچی دست احتمالا اصلا نمیفهمیش احتمالا نمیتره <تصفيق> از بیسمال خوشت میاد؟ آره دوستش دارم خوبه خب یه روز تو استادیوم اف ام وی تد ویلیامز آ معلومه همون بازی که میانگیرین توپ زنیش 344 درصد <تصفيق> آره همون تدون یمزه یه روز استودیوم اف ام وی بوده یاس میاد میگه من خام تو تیمتون بازی کنم آره یسد واقعی تر میگه خب چه کاری بلدی اسفه میگه منم مثل تو توب میزنم ولی بهتر چون به با دندوناش برمیداره اون وقت چند تا توب براش پرت میکنه و اسفه گم گم همه رو میزنه تد بعد میگه وای. اسبه میگه تازه تو پست دفاعم بازی میکنم تد چند تا توپ براش میدازه و میبینه که اسبه اصفه... جون همه توپا رو میزنه آره تد میگه وای پرتابم میکنی اسبه نگاش میکنه میگه پرتاب آخه بی اسب چطوری مم. مم. مم. آره آره خانوها آقایان بانوی خندان رو تراشا کرید خواهش میکنم بمزده ترین جو که بود که تو زندگیم شنیده بودم ممنونم بس تحریف نداشتم شام خونه من خیابان هیچنان پلاکه سیستد و سه ساعت هشت سه شنبه. باشه خب چه کمکی ازم برمیان میخوام یه شریک به حسابم اضافه کنم میشه دلیلشو بدونم؟ خب یه مدت میرم سفر سفر؟ باشه الان فرم هاشو براتو میرم تمام این شرکت تو اعتبار بالایی پیش ما دارن. این یکی چیه؟ شرکت تصویربرداری هالون؟ حدود پنجاه سال فعالیت دارن. تولید کاغذ و تجهیزات عکاسی. روی فناوری الکتر و فوتوگرافی کار میکنن که میتونه انقلابی تو این صنعت ایجاد کنه. ولی در مدت سودی نمیبره. این چند سال طول میکشه. اشکالی نداره. دلم نمیخواد سرمایه‌تون راکت بمونه. من آدم اینکه اسمشون رو عوض کردهن. اسمشون شده این با حرف ایس شروع میشه یونانی تلفظش زیراکسه زیراکس خب میتونیم از فرم امزا شروع کنیم اسم شریک جدید چیه؟ سوزان فلایشر سوزان اف ال ای آی بعد موقع اومدم؟ آه سلام فکردم کردم پشیمون شدی؟ نه نه تاکسی کم معطلم کرد؟ سلام سلام نمیخوای بشینی؟ چرا؟ چرا؟ چ... چرا خونت ناقصه؟ آره ام، یه جورنی میکارهست نکنه جنبه هنری داره؟ ها ها ها. نه. باید سیمکشی و گشکاری و نقاشی و از اینجور کارو رو ولی چون خودم همش انجام میدم خب یکم زمان میبره اتمالا قصاد داره میسوسه آو. خب دیگه راحت باش خونه خودته بشین باشه ام... حالا چی داری ام... میپذی راستش یه غذای خوشمزه که با هر زائقه جودر نمیاد فقط امیدوارم خوشت بیاد او بفرمایین <تصفيق> به نظرت انتخاب خوبی کردن؟ از نظر من که فوق لدن شروع کن باشه مم. غذا عالیه ولی موسیقی افتزاهه خوشت بمیاد؟ موسیقی رو خیلی دوست دارم ولی اینو نه مادرم تو می شده، یه زن مهربون ولی مسمم و فوق العاده سرسخت اما پدرم چطور بگم؟ تو آسه اونا سیر میکنه واقعا اخترشناسه، تازه از استنفورد بازنشسته شده پدرم با کشف یه دنبال دار غیرادی مشهور شد غیرعادی از چه نظر؟ حرکتش از نظر محاسبات ریاضی قابل اثباته پدرم پیش بینی کرده بود زمستون 1981 دوباره از کنار زمین رد میشه رد شد؟ نه نه رد نشد <laughs> <laughs> <laughs> <dür> اما این باعث نشد اون دیگه دنبالش نگرده وقتی بچه بودم با هم دیگه دنبالش میگشتیم پدرم هنوزم دنبالشه تو هم پدر تواسه موند و ملسته تاره میگردی؟ <تصفيق> اولین مار که دیدمت بعد از جنسه هیت مدیره بود داشتی کتاب میخوندی یه کتاب بزرگ با خط بریل نشسته بودی رو پله با یه لباس آبی زیبا من آروم از کنارت رد شد چقدر آروم؟ <تصفيق> اون وقت که بفهمم تو نابینا نیستی همون موقع حس کردم باید ببینمت کی و کجا مهم نبود؟ فکر کنم فکر کنم اون روز یادمه با خط بریل آموزش زبان نروژی خوندنش واقعا سخت بود <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هر چیزی را زبان تو باور میکنم گرچه هیچی ازت نمیدونم گاهی ندونستم بهتره ش یه دلار و پنجاه صد خانم خانم. عب نظرم عوض باشد لطفا حرکت کنید. باشه. جنی هم؟ اینجا چیکار کار میکنی بهت زنگ زدم ولی مدرسم از کجا پیدا کردی ام... از کتا خونه خواهشون کنم نراهب نشو آخر راه دیگه نداشتم حالا اصلا خوب نیست یاد خانه مادم افتده آه نه باید سب میکرده خودم بهت زنگ بزنم من نمیخواستم دلیلی داره که آدرس همون به همه نمیدم من من واقعا اوز میتوام این اقتباد دور باطله من دارم از اینجا میرم داری شوخی میکنی؟ بفرمایین مهربانی چی شده چرا نرهدی از فرار کردن خسته شدم بعد رو گفتن به آدمای خوب پس تمومش کن الان دیگه کسی دنبالت نیست هرکس کوچکترین شکی داشته الان دیگه مردی آخه دلیلی نداره تا ابد تنها باشی دلت برای عاشق شدن تنگ نشده الان مدت‌هاست تنهایی.ختی آینده‌ای نباشه چه فایده‌ای داره؟ چی میگی؟ تو بیشتر از همه آینده داری. منظورم آینده مشترکه. پیر شدن کنار هم. بدون این عشق فقط دلشکستگیه. برای همه همینطوره. خود من چند بار دلشکسته شدم. زیاد. اگه من انرژی و قیافه تو رو داشتم همین فردا ازدواج می‌کردم، جدی می‌گم. <تصفيق> من با یه نفر آشنا شدم چی؟ هیچی تو جشن سال نوع اتفاقی با هم سوار ها شد چرا بهم هم نگفتی؟ چون میدونستم اینطوری برخورد میکنی <تصفح> بیخود های زده نشو عزیزم بهش گفتم دست از سرام برداره آه... خیلی بعد باهاش حرف بی زدم ازش ازخایی کن بهش بگو اشتباه کردی آه... نمیتونم چون دارم میرم داری میدی اورگون کوره ماه که نمیدی خواهیش میکنم اگه به خاطر خودت این کارو نمی نمیکنی به خاطر من بکن خواهیش سلام بله بفرمایید ام اومدم الیس رو ببینم البته ایشون منتظر من نیستن آه بذاریم ببینم چی کار میشه کرد شما؟ ما متاسفانه نمیتونم بگم آقای جانزی مهمون براتون اومده اسمتون رو پرسیدم جنفر لارسون خلا خب پس لطفا بهش بگید من درک میکنم اگه نمیخواد منو ببینه الان فقط اومدم برای عصر خواهی و اینکه بگم وضعیت زندگیم خیلی عجیب بوده اونم نه یکی دو روز برای مدت خیلی طولانی من اون روز واقعا حالم زیاد خوب نبود و حالا کم کم دارم متوجه میشم که اون چقدر با من مهربون بوده با من ابلهتر از اونی بودم که محبتش رو بپذیرم و الان تازه موضوع فهمیدم و به همین دلیل اومدم اینجا بهش بگم چقدر متاسفم باشه و بهش بگید اگه امکانش هست چند لحظه بیاد پایین اجازه بده برای جبران رفتارم امشب دعوتش کنم به شام لطفا جنیفر لارسون اینجاست و میگه درک میکنه اگه شما او خودتون شنیدین؟ خیلی خوب میپرسن کجا قراره ببریدشون؟ جایی که تو عمرش هرگز نرفته سلام جنی بیا یعنی واقعا فکر کردی من تالا همچین جاهایی رو ندیدم؟ حرف نزن اینجا با چیزی که به نظر میاد فرق داره در واقع یکی از محبوب ترین سینما های شهر بوده سالن سینما؟ آره دههی 1930 خانمی به اسم مری الیزابت بود یه جای خون که یه آدم سروتمند تو ایالت نیوجرسی یه سینما برای ماشینان درست کرده برای همین یکی برای خودش تو سان فرانسیسکو تحسیز کرد همه فکر کردن طرف پاک دیمونه است که همین طور هم بود از هر ایدهی خاص و احمقانه استقبال می کرد یه جوری لباس می انگار از همه آدما بهتر و بالاتر در حالی که بکسری به دلیل قوانین محلی <تصیح> نمیتونه سینمای روباز تأسیس <تص. کنه پس همه ماشینا رو آورده اینجا پرداش هنوز اونجاست واقعا تماشایی بود به نظر من آماده بهترین قسمتش هستی؟ آره. پس بالا رو نگاه کن آها روی سقف فرشته‌های شب نمان است کرد. کلی وقت گذاشتن و سوغره فلکی اینجا ساختن. است. چرا؟ میشه توماس بزنی این شونو سوال کنید؟ مطمئنی طرف آدم خطرناکی نیست؟ هاره خواهرمه. اوه. چطوری بچه مامانی نیست سفار میشه خودت چی میگی هنوز این خورازه رو داری منم از دیدنت خوشحالم سلام کیکی ایشون جنیه جنی ایشون خوهرم خوشبه دارم منم همینطور چرا بایم نگهتی با اتوبوس میاییم میبادم ایس خود منبالت الان دو ماهی که از تلفن استفاده نمی چطور دلیل خاصی داره اِتراض به شراکت شرکت‌های مخابراتی در تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته. آه دانشگاه مرکلی درس خونده. آها. بیشتر خودتو معرفی کنم؟ نامزد کردی؟ آره، همین امروز در لحظه شیرین. و بله بله آه پس ملخره رسیدی سلام عزیز عزیزه <دلاز. تصفيق> مامان ایشون چنی است سلام آداس نیتون خوش وقت منم هم <تصفيق> حتما تو را حسابی خسته جنی نه خیلی طولانی نه آه اصلا هیچ دادگی طول کشید پدرش <فادرس> یادتون رفتم نه ایشون پدرمه فیلیام پدر ایشون من جنی هستم اه اه اه پاپا خوبی؟ بخشی بخش دقیقا شبیه یکی از هم همدانشگاری های قدیم همستی من م... اون مادرمه ا... یعنی جدی؟ آره خودت؟ روی شما میشنختی آره محظورم اینی که ساقه ازش میگذره تو تو لندن درست میخوندیم آره درسته مادرم دهیش هست اونجا زندگی میکرد تو لندن قبل از که بره پاریس و با پدرم آشنا بشه دونه چقدر کچی که عجب, عجب. عجب. عجب. واقعا باور نکردنیه. نیه حتما خیلی ها بهتون گفتن. درست از وقتی که یادم میاد وای مثل دونیمه یه سوی <متصفح> <متصفح> شروعش نکن دیگه دختر و شبیه مادرشونه <متصفح> آره طبیعه ولی نه تاین تا هر زیاد حساس شدی فکر می‌کنی که الان حالش چطوره؟ <متصفح> <intent de Survey> آه، آه، آه مادرم فوت کرده شش سال پیش آه واقعا وای خیلی متاسفم اون یه استثناء بود خب بیاین تو نمیخواین یه چیزی بخورین آه بله بله بیاین من کیک پختم آم راستش ما خیلی خستهیم اگه اشکالی نداره بریم استراحت کنیم این چیلی راحت تریم منم همیتون با باشه اتاق پشتی رو براتون مراتب کرد از اتاق پشتی مالتو بریم بریم بریم آشنایید خیلی خوشمان شد. یگه <متحب> گاز بدی موتور خفه میکنه ممنونم از راه راهنمای درسته ممنون امروز حسابی دیر میرسی متاسفانه <متحب> من هر کاری میتونستم کردم ولی روشن نشد نمیشه دیگه خب کافیه هولش بدیم دستی رو بخوامون من هولش میدم کلاچو بگیر ولش کن روشن میشه باشه آماده؟ آماده هم، آماده ای؟ ناره داریم حالا کنه چا ببین کار بمنونم آنها چند بار دیگر همدیگر رو در دانشگاه دیدند اما ادلائن به عهدی که بسته بود وفادار ماند تو هنوز ناصی چقدر از درس مونده؟ داره تموم میشه. ولی نقشه های زیادی برای آینده دارم. موفق باشی. <تصفيق> ممنون. سلام. سلام. خب خوبی؟ آره؟ خوبه. دیشب متاسفم اونو یاد مادرش شانداختم <تصفح> فکر کنم دارم خل میشم اسکاری نداره سلام ا کی مدی بالا زیاد دیر نبودی یه کم کتاب خو جنی کجاست؟ فکر کنم بیدار شده راستی نگفتی چطور به ماشنا شدیم؟ خب خوبا... جشن سال نه تو آسانسور همدیگه رو دیدیم قهوه میخوای؟ او نه ممنون ولی من قبل از اون دیده بودمش سلام رو کلایک تا خونه دیدمش داشت کتاب با خط بریل میخوند آه. همونجا فهمیدم الان چه جاله میده میاش مادرش هم میترو چطور با مادرش هاش شد بابا لندن یه روز ماشینش خراب شده بود من کمکش کردم تو راش بنداز پس مادرت انگلیسی بود او نه نه نه رفته بود اونجا فرانسوی بخونه <تصفح> چهار زبان بلد بود درسته؟ آره فکر کنم البته جنیم چند تا زمان بلده واقعا <تصفيق> آم تو چند سالت بوده ویلیام؟ فکر کنم سال دوم پزشکی بودم یعنی حدود 26 سال و میخواستم پزشکی رو ول کنم چون خسته شده بودم از طرفی نگاران بودم فکر میکردم برای شروعی رشتهی زدید پیر شدم وقتی وقتی به عدلین گفتم نگام کرد و حسابی به هم خندی به گفت برو دنبال علاقت هم نکن زندگی یک خیلی کوتاهتر از این حرف اگه اینو نگفته بود احتمالا هیچ وقت نمیرفتم سراغ اختر و فیزیک فقط چند بار دیدمش از من بزرگتر بود و خیلی آقل بسیار فهمیده بود اون آزیزم دیگه چی؟ تو چی شده؟ به نظرت خنده داره؟ م منظور چی؟ مگه من چی؟ بخوای آخر هفته رو با مرور خاطرات بگذرونی؟ ببین اونقد شبیه مادرشه که شوکه شدم انگار روح دیده باشم فقط برام جالب بود کتی از گذشته ف... حرف میزنی می احساس پیری میکنم منظور چی؟ مخصوصا توی احساس پیری؟ بله فقط یه خاطره بود باز کن احساس پیری نه آه. داره قضیه رو بی خود پیچیده میکنی عزیزم مطم <تصفيق> آره حسودیم شده ببین من چند هفته بعدش برگشتم خونم خیلی خوب برگردیم پیش بچه ها درمی هم میدونم آخر هفته خسته کننده ممنونم که داری تحمل بکنی اشکالی نداره یه حرف به گذشته نمیدونم چی بگم پدر خوبیه حتما مادرتو خیلی دوست داشتی آره خیلی هی کی زود باش. میخای از شیل غنی بود دهن. ها گوش بابا چرا هفت رو پشت سر هم نباخته؟ کلی پول بابا چه دادم که یه حریف خوب تو بازی داشته باشه. حالا بازی کردی؟ نه هیچ وقت. هی کی زود باش. خب بیشتر سوال درباره در برای چیزای بی اهمیته برای همین میگن معلومات همون ببینم اینو میتونی جواب بدیم <مزن> 22 و سال 1938 این مجزن آمریکایی با شکست دادن فکسش میلینگ در راند اول عنوان قهرمانی سنگین وز رو از اون پس کرده خیلی سوال سختیه نه میدونم خب پس بزن سانیلیستان <مزن> <مزن> جو لویس ولی خوبی بود از برمان بیاییم با هم تیم تشکیل بدیم چطوره؟ اوه چرا که نه بفرمایی خانواست صورتی خانواست رنگ صورتی اون رای جمهوری که در بیمارستان به دنیا چی بود؟ فکر کنم کارتر ها ها را کارت چقدر سری تازه کارا خوششمس رفتی به شانس نداره حاله میبینی حلقه لاغری در چه مرسمی برای اولین بار معرفی شد سال 1956 نمایشگاه جهانی لوازم ورزشی در شهر اسکنیکی دی 1956 نمایشگاه جهانی دقیقا <تصفح> او ولادم نمیشه. عالی بود. نر داره در رکورد پیروزی هاتش شکسته میشه. سوال آخر. فیزیکدانی که سال 1950 در گذشت کی بود؟ آینستین. مال نورسی؟ حسنه باورم نمیشه باستو نخور هنوزم دوستت داریم چه احساسی داری پاپا؟ قم انگیزی؟ نه خوبم فکر می کنی تو کهکشان ما چند تا ستاره هست نمیدونم دونم میلیون چندصد میلیارد. افلاتون باور داشت که هر ستاره مربوط به تولده یکی از افراد روی زمینی که بعد از مریان فرد خاموش میشه اگه زندگی سالمی داشته باشه شما هم باور دارین؟ نه نه من یه دانشمندم افلاتون فیلسوف بود و شاعر چرا به اون دنبال داره اینقدر علاقه مند شدین؟ اگه محاسباتم درست بود که البته درست نبوده اون نزدیکترین دنبال داری بود که طی دویس سال از کنار زمین رد می شود. در واقع اونم مثل زندگی در زمانه خیلی کوتاهی از دست می ره. منظورتون چیه؟ تو زیاد نمیشنخدم اون به هم گفت زندگی خیلی کتاقه خودشم زود قیبش زد ناراحت نشد بقید یه خاطره بود های جونز شما پدر خوبی هستین. آ، سلام. جی. نمی‌دونین بقیه کجا رفتن؟ چرا کتی و چکی رفتن بازار، الیسم رفت یکم بدو. آ، باشه. او یه هاشاره تو موتی نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه داره میره؟ آره نه نه لطفاً به نه بگین رفتم قدم بزنم من می دونم تو کیست یاد لین اینجا این زخم خودم بخی یک زدم دیگه هیچ تردیدی ندارم لطفاً حقیقتو بگو کردم دارم دیوونه میشم چطور چطور چنین چیزی ممکنه نه من نمیدونم من آدم معمولی بودم ولی از یه جایی زندگی عادی متوقف شد خیلی دلم میخواست بهت بگم ولی نمیتونستم میدونی که چی کارم میکردم تبدیل میشدم به یه نمونه یا از آره. علامت سوال آه. تو برای این فرار کردی؟ دلیل ناپدید شدن؟ نمیتونی تصور کنی این وضعیت چقدر دشواره؟ آه... چرا؟ من میتونم خواهش میکنم فرار نکن دوباره ناپدید نشو به خاطر الیس از نمیتونم تمام این سال ها... زنده بودی ولی زندگی نکردی به خاطر خودت و الیس بمونم هدلین موندن یادم رفته فرار نکن هدلین این کار نکن، نکن نادلاین، نه، به الیس فکر کن، خواهیش بیکن، آدمای لطفان، آدمای! الیس فعلا متاسفم نمیتونم بیامونم، نمیتونم توضیح بدم، چنی. پاپا، پاپا، سویچ باشید کجاست؟ دیگه بر نمی پسرم چه اتصفاقی افتاده؟ این این چیه؟ تو به چی گفتی؟ هیچی اون نمیتونه توضیح بده خواهش میکنم بگو چی گفت اون توانایشو نداره پسرم تغییرو تغییر دوستش پسرم گوش کن دوستش داری؟ آره مطمئنی؟ من منظورتوت سوال سادهیه از کجا مطمئنی؟ بدون اون هیچی برام منی نداره از خوابی کردم عزیزم اتفاق رفتنه. نه نه فقط میخواستم بهت بگم چی شده حق با تو بود فرار بسته مهباد فردا بهت زنگ میزنم باشه خیلی خوشانم کردی دوست دارم منم دوست دارم خدا خیز. خدا افیس مسئول بسیاری از اتفاقاتی است که بر سطح کره زمین میافتد. در سال 1178 یک شهاب سنگ به سطح ماه برخورد کرد. ضربه ناشی از آن برخورد باعث تغییرات گامهای مختلف ماه و در نتیجه ایجاد جزر و شدیدی در شهر تیرا و آرژانتین شد. افزایش 23 درصدی میانگین اجز مد در آن شب باعث طوفانی در 3000 کیلومتری ساحل اقیانوس آرام گردید. بنابراین یونیزه شدن ها در جو افزایش یافت و برای اولین بار در طی 78 سال در این بخش از شهر سنوما برف بارید. در مراحل اولیه سرمازدگی بدن سعی می کند با لرزیدن گرما تولید کند. اگر این روش جواب ندهد جریان خون در اندامهای خارجی کاهش می‌یابد. متابولیسم شدیداً کند می‌شود. فرد در حال مردن است اما خودش نمی‌داند. و در مراحل آخر قربانی تنها یک یا دو بار در دقیقه نفس می‌کشد. وضعیت حیات معلق و بی‌ثبات است. ساعت ده و هفت دقیقه شب دمای داخلی بدن ادلاین بومن به شدت کاهش یافت قلب او از تپش ایستاد سرانجام در سن صد سالگی ادلاین بومن در وضعیت مرگ قرار گرفت در ساعت ده و 9 دقیقه شب امدادگران دو پد الکتروشوک را به قلب ادلاین بومن متصل کردند مطابق معمول قبل از وارد کردن 750 ولت الکتریسیتی 5 ثانیه منتظر ماندند چطوره؟ یه سری آزمایش روش انجام دادیم هیچ اثری از آسیب ماندگار وجود نداره واقعا خیلی شانس برده بیداره میتونم ببینمش بی نهایت خست از ولی میتونی چند کلمه باهاش حرف بزنی باشه ممنونم چرا فرار کردی واقعا اسه باشم من اینقدر ترسناک که فرار کردی آره تو ترسیدی از علاقه من خدایا چی شد هی چی فقط تصادف کردم حالم خوبه عزیزم هی hey. حالم خوبه آره این الیسا اصر اصر ها کسی که دربارش بهت گفته بودم دیدنتون خوشحالم من مادر بزرگ جنی هستم چیه چی شده اون نیدونه یک سال بعد عجله کنی دیرتون میشه وقت تلف نکنین بجنبین من ده دقیقه فاصله چه خوشتیپ شدی ممنونه دوربینم لحظه‌ای که قلب ادلاین شوک الکتریکی دریافت کرد، رشته‌های دی این ایش خاصیت ان خاصیت انطاق فیزیکی خود را باز یافتند و در نتیجه او به روال طبیعی پیر شدن بازگشت. در نهایت حق با میلیام بود. دنبال دار DNA 1981 بالاخره بازگشت. اگرچه با 50 سال تأخیر، اما با همان روشنی و شکویی که او پیشبینی کرده بود.